دوستان به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدیم. مطالعه کلام خدا به همراه شما مایه بسی افتخار و لذت بخشه. توی سفرمون در کلام خدا حالا به موعظه سر کوه رسیدیم که بخشی از مطالعی انجیل متا هست. باز هم از شما دعوت می‌کنیم به بالای کوه بریم. جایی که عیسی داره به ما نشون میده که چطور بخشی از راه حل‌ها و جواب‌های او برای مشکلات دنیا باشیم چطور نمک روی زمین و نور این جهان بشیم بیاید به دقت به درس امروز معلممون گوش کنیم وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه‌های خیابان‌ها بیستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند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 احتیاجات شما را پیش از آنکه از او بخواهید می داند. پس شما اینطور دعا کنید. ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد. پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود، در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. ما را از وسوسه ها دور نگهدار. و از شریج رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا عبداللहाबाद از آن توست آمین باز هم از شما دعوت میکنم به بالای کوه بریم جایی که عیسی داره به ما نشون میده که چطور بخشی از راحلها و جواب او برای مشکلات دنیا باشیم چطور نمک روی زمین و نور این جهان بشیم در بالای کوه عیسی به ما گفته به وسیله اون رفتارهای زیبا که فقط خدا میتونه در تجربیات ما قرار بده به درون نگاه کنیم. عیسی به ما میگه به اطرافمون نگاه کنیم و بیشتر در مورد ادالت رابطه‌ای به ما تعلیم میده. در باب شش از تا عالیمش که بهش موعظه سر کوه میگیم، عیسی به ما میگه که به بالا نگاه کنیم. مقررات روحانی هست که ما رو نمک زمین و نور جهان خواهد کرد. من به اونها مقررات عمودی الهی شاگردان میگم. "باید به بالا نگاه کنید و فیض بیابید که شما رو مجهز کنه تا آنجایی که میتونید" به درون و به اطراف نگاه کنید اولین مقررات روحانی که عیسی با ما دربارش صحبت می کنه هدیه است. دومین مقررات روحانی دعا کردن هست باید بدونید که چطور دعا کنید اگر شما ندونید چطور باید دعا کنید وقتی وارد دنیا می و با اون مردم معاشرت می کنید نمی بخشی از راه های ایسا برای مشکلات اونها باشید اگر ندونید چطور دعا کنید، شما حتی نمیتونید مشکلات خودتون رو حل کنید اگر لازم شاگرد عیسی مسیح باشید قطعا باید بدونید که چطور باید دعا کنید خیلیا هستند که نمیدونند باید چطور دعا کنن رسولان نزد عیسی آمدند و گفتند خداوندا به ما یاد بده که دعا کنیم خیلی ها نزد من آمدند و این درخواست را از من کردند و من به اونها گفتم که چطور دعا کنن اونها میگفتن دلیلی که ما به جلسات کوچک دعای شما نمیاییم اینه که نمی دونیم چطور دعا کنیم چون نمیخوایم شرمنده بشیم من نمی دونم چرا مردم نمیان با ما دعا کنند قالب اوقات به خاطر اینه که کسی به اونها یاد نداده که چطور دعا کنند در اولین گرد همایی مسیحیان عیسی به اونها گفت که چطور دعا کنند وقتی عیسی به اونها مقررات عمودی دعا رو تعلیم داد همون چیز رو به اونها گفت که در مورد هدیه دادن گفته بود و همون چیز رو در مورد مقررات روحانی روزه هم می عیسی به اونها یاد داد که این سه مقررات روحانی رابطه مستقیم با خدا هستند وقتی دعا میکنید به طور افقی دعا نمیکنید مردم مخاطب شما نیستند شما با خدا صحبت میکنید یک بار شنیدم که خانمی در جلسه دعایی کوچکی دعا میکرد و میگفت خداوند تو میدونی همونطور که در رومیان 6-23 اومده و همونطور که در یوحنا 3:16 اومده و بعد از جلسه دعا شبان گفت خانم آیا فکر نمیکنی خداوند میدونه که هر ای در کجا قرار گرفته؟ او گفت اوه بله شبان اما مردم نمیدونن. وقتی دارید دعا می کنید مخاطب شما کیه؟ دعا موعظه نیست. بسیاری از واعظین وقتی نکته سوم موعظهشون رو فراموش میکنن اون رو در دعای پایانی به یاد میارن. اونا در واقع با خدا صحبت نمیکنن و موعظهشون رو ادامه میدن. این خیلی مهمه که وقتی دعا می کنید مخاطبتون خدا باشه. عیسی گفت اگر میخواهید که مطمئن بشید مخاطب شما خدا هست به خلوت دعای خودتون برید و درها رو ببندید اونجا کسی جز خدا تحت تاثیر قرار نمیگیره اونجا با خدا صحبت کنید و پدر نهانبین شما به شما پاداش خواهد داد اگر میخواهید که به حضور خدا بیایید کتاب مقدس میگه باید به وجود او ایمان داشته باشید آیا به وجود خدا ایمان دارید آیا قویانه ایمان دارید که او به حد کافی قدرتمنده که شما در محیط دربسته در خلوت دعایی با او صحبت کنید؟ یه بار یه نفر میگفت شبان من توی خلوت دعایی دلم میگیره او عملا به یک انباری زیر پله میرفت و در رو میبست منظور من از خلوت این نیست به اعتقاد من منظور از خلوت دعایی اینه که شما با خدا تنها باشید و فقط با او حرف بزنید یکی از جاهایی که میتونید امروز با خدا تنها باشید موقع رفتن سر کارتون هست وقتی که در جاده رانندگی میکنید میتونید با خدا حرف بزنید چون کسی اونجا نیست که تحت تاثیر قرار بگیره اما وقتی دارید رانندگی میکنید چشمانتون رو نبندید بعد از اینکه عیسی به ما یاد میده دعا یک رابطه عمودی هست به ما یاد میده که چطور دعا کنیم او به ما نمونه ای می میده که به دعای شاگردان معروف هست. بعضی ها به اون دعای خداوند میگن عملا این دعا نمیتونه دعای خداوند خونده بشه چون خداوند هرگز این دعا رو نکرده او گفت وقتی دعا می کنید این طور دعا کنید. علمای دینی چیزی به مردم میدادند که به اون دعای می میگفتند. اونا میگفتن حالا این طور دعا کنید وقتی این طور دعا کنید تمامی درخواستایی که به ذهنتون میاد در اون دعای کوچک جا بدید. پس در قالب این دعای کلیشه یک کوچک دعا کنید. عیسی هم وقتی که الگوی دعایی به ما میده یک چنین کاری میکنه. در این دعا هفت درخواست هست. سه تا از اونها های مقدماتی هستند و چهار تا از اونها های شخصی. او میگه اینطور شروع کنید پدر ما. حالا این خیلی زیبا هست. عهد قدیم میگه خداوند شبان منه. و عهد جدید میگه خدا پدر منه. هر دو عهد به ما این رو یاد میدن که خدا شخص هست. عیسی به ما گفت طوری با خدا صحبت کنیم مثل اینکه با پدرمون صحبت میکنیم. در کتاب غلاتیان پولس به ما یاد میده مخصوصا وقتی که شما به خدا نزدیک هستید قلب شما فریاد خواهد زد اب با پدر یعنی بابای من هم عیسی و هم پولس به ما تعلیم میدن که طوری دعا کنیم که گویی فرزندان هستیم وقتی عیسی به ما یاد میده که خدا رو چطور خطاب کنیم توجه کنید که او به ما تعلیم نمیده که عیسی رو مخاطب قرار بدیم او به ما یاد میده که خدای پدر رو مخاطب قرار بدیم این تعلیم به دنبال سه درخواست مقدماتی میاد نام تو آدشاهی تو و اراده تو. پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد. نام خدا جوهر و اساس خدا هست. پس در واقع چیزی که اینجا دعا میکنید اینه که خدای من میخوام طوری زندگی کنم که ذات و ماهیت تو توسط زندگی من آشکار بشه. من می خوام که مردم نام تو رو بدونند تا جایی که اونها به خاطر طرز زندگی من نام تو رو تکریم کنن. بعد دعا میکنید پادشاهی تو بیاید چیزی که اینجا دعا میکنیم اینه پدر من برای خودم هیچ پادشاهی نساختم من میخوام که پادشاهی تو بیاد من میخوام این مردم نه تنها ذات تو رو بشناسند تا جایی که تو رو تکریم کنند بلکه میخوام که اونها تو رو پادشاه خودشون قرار بدن و مطیع تو باشند عیسی دومین درخواست مقدماتی رو با سومین درخواست تفسیر میکنه اراده تو چنان که در آسمان انجام می شود بر زمین نیز به انجام برسد. اینجا درخواست اینه. ما فقط ظرفهای خاکی هستیم و من دعا می کنم بدر که اراده تو انجام بشه. دعا می کنم اراده تو توسط ظرف خاکی من و توسط زندگی من انجام بشه. همونطور که ارادت در جایهای آسمانی انجام میشه. اینجا سه بار شما میگید اول خدا. اول خدا. اول خدا. ببینید دعا کردن این نیست که با لیست خریدی به حضور خدا بیایید. و او رو دنبال خرید هاتون مفرستید شما اینطور شروع میکنید خداوند من علاقمند چیزیم که تو بهش علاقمندی به محض اینکه این اولویت رو برقرار کردید بعد به درخواستهای شخصیتون میرسید نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما حالا وقتی میگید به ما بده برای چی دعا میکنید برای نان دعا میکنید نان نماد تمامی نیازهای شماست نانی که نیاز دارید فقط برای امروز نان روزانه ما را امروز به معطا فرما. دو بار شما به یک روز تاکید می کنید. کسانی که به مشکلات وحشتناک غلبه کرده اند مثل الکلی هایی که بهبود اند، به شما خواهند گفت که فقط خدا بود که این امکان رو فراهم کرد که اونها نجات پیدا کنند. اونها میگن که من نمیتونم اما او می تونه. اونا همینطور به شما خواهند گفت که باید یاد بگیرید که زندگی رو روز به روز سپری کنید. خداوندا فقط برای امروز به من عطا کن. نان روزانه ما را امروز به ما اتا فرما. درخواست بعدی در دعای شاگردان اینه. ما را ببخش. اکثر اوقات ما نام خدا را به مردم نشون نمیدیم. ما با طرز زندگیمون پادشاهی او را بر روی زمین نمیاریم. اراده او اونطور که در آسمان اجرا میشه، در ما و توسط ما جاری نمیشه. پس ما باید دعا کنیم ما را ببخش همونطور که ما میبخشیم ما را ببخش. شبان لوئیس ایوانز گفته ده کلمه هستند که بسیاری از ازدواج را نجات دادن و فقدان این ده کلمه باعث شده بسیاری از ازدواج از هم بپاشند. اونها عبارتند از من اشتباه کردم، متاسف هستم، خواهش میکنم، منو ببخشید. من برمان یک شبان و مشاور از کسانی که نمیخواند این ده کلمه را استفاده کنند مخصوصا مردان، البته زنانم همینطور، حیرت میکنم، اونا هرگز نمیگن من اشتباه کردم. هرگز نمیگن متاسفم. هرگز نمیگن خواهش میکنم منو ببخش. این منو در مقابل شما کوچک میکنه. آیا این تعصب نیست؟ من زنانی را هم دیدم که در مورد بخشش اینطور طور هستن. اونها هرگز نمیبخشند و هرگز درخواست بخشش نمیکنن. اینجا وقتی پای بخشش به میون میاد، عیسا به شاگردان یاد میده و میگه اگر شما نبخشید، من هم شما رو نخواهم بخشید. بعدها ایسا تمثیل قدرتمندی در مورد بخشش به ما میده. در دعای شاگردان و در تمثیل عیسی تعلیم نمیده که بخشش شما بر مبنای این واقعیته که شما میبخشید. بخشید. ایسا به ما یاد میده که اگر شما شخص بخشنده ای هستید و واقعا به اون ملزم هستید، ثابت میکنید که بخشیده شده اید. شما کی هستید که دیگران رو نبخشید در حالی که خودتون بخشیده شده اید؟ درخواست شخصی بعدی اینه ما را هدایت کن تا وسوسه نشیم. این درخواست بعضی ها رو به زحمت میندازه. اونا میگن خدا نمیتونه ما رو به وسوسه هدایت کنه چون خدا نمیتونه توسط شرید وسوسه بشه و خودش هم کسی رو وسوسه نمیکنه یعقوب این رو به ما خواهد گفت اگر این درخواست رو درک کنیم چیزی که داره میگه اینه پدر اگر تو منو هدایت کنی اگر گامهای من توسط تو مرتب بشه و من هر روز در هر قدم تو رو پیروی کنم با وسوسه مواجه نخواهم شد پس امروز منو هدایت کن در نتیجه هدایت تو و پیروی من از تو با وسوسه مواجه نخواهم شد به قول کتاب مقدس ما نابغه و ارکان قدرت نیستیم یک بار عیسی از رسولان خواست که با او دعا کنند در حالی که او دعا میکرد رسولان به خواب رفتند عیسی اونها رو بیدار کرد و گفت باید بلند شید و دعا کنید تا به وسوسه نیفتید اگر میدونستید که وسوسه چه قدرتی میتونه داشته باشه بیدار میموندید و دعا میکردید تا به وسوسه نیفتید کتاب مقدس میگه وسوسه هایی که شما با آن روبرو میشید وسوسه هایی که برای تمام مردم پیش میاد اما خدا به وعده های خود وفا میکنه و نمیذاره شما بیش از حد توانایی خود وسوسه بشید. همراه با هر وسوسه خداوند راهی هم برای فرار از اون فراهم میکنه تا بتونید در مقابل اون پایداری کنید. وقتی شبان جوان ها بودم یادمه که یک جوان دبیرستانی از من سوالی پرسید سوالش این بود وقتی که دختر جوانی رو به تئاتر میبری و با او حسابی قاطی میشی چجوری میتونی از وسوسه خلاص بشی خب من گفتم آیه بعدی رو بخون آیه بعدی میگه بنابراین فرار کنید و گفتم این راه خلاص شدن تو هست تو نباید هرگز در دام اشتیاق قاطی شدن با یک دختر بیفتی کتاب مقدس میگه ما ارکان قدرت نیستیم پس باید فرار کنیم تا از وسوسه اجتناب کنیم هر روز به خدا بگید من نمیخوام وسوسه بشم. خدایا اگر تو منو هدایت کنی من وسوسه نخواهم شد. خدا شما رو به وسوسه هدایت نمیکنه. چهارمین درخواست اینه ما رو رهاییده. ما را از شریر رهاییده. وقتی دعا میکنیم ما را از شریر رهاییده، کلمه شریر در این درخواست عملا شخص شریره. در این درخواست ما دعا میکنیم که از قدرت شیطان رها بشیم. کلمه نجات در واقع معنیش رهایی هست و نجات یافته یعنی رها شده. پس ما هر روزه برای نجات از قدرت شیطان دعا می‌کنیم. درخواست‌های شخصی اینها هستند. به ما عطا کن، ما را ببخش، ما را هدایت کن و ما را رحایی ده. این روش دعا کردن هست. این دعای کلیشه‌ای میگه وقتی دعا می‌کنید تمامی درخواست هاتون رو حول محور این چهار درخواست شخصی بکنید. وقتی دعا میکنید این گونه دعا کنید پدر من اهمیت نمیدم کسی اسم منو بدونه اما میخوام اونها اسم تو رو بدونن پدر من برای خودم پادشاهی نمیسازم بلکه میخوام ببینم پادشاهی تو میاد میخوام ببینم که مردم مطیع تو میشن میخوام ببینم که اراده تو در روی زمین و در زندگی من انجام میشه همونطور که در آسمان انجام میشه و در انتها پدر به ما عطا کن ما را ببخش ما را هدایت کن و ما را رهایی ده وقتی اینطور دعا کردید ملاحظه کنید که دعا چطور خاتمه پیدا میکنه پادشاهی و قدرت و جلال تا ابد از آن توست آمین معنی این چیه معنی اون دقیقا اینه شما دعاهاتون رو همونطور که شروع کردید به پایان میبرید چیزی که دارید میگید اینه پدر میدونم که قدرت پاسخ به این دعا از جانب تو میاد بنابراین جلال همیشه از آن توست و نتیجه همیشه از آن توست از آن توس بسیاری از شبانان می‌دونن که چه حسی داره یک کلیسا تأسیس کنی و شبانی اونو به مدت 20 سال به عهده بگیری و در مرحله‌ای خدا بگه اون کلیسا را به من بده حالا وقتی این اتفاق می‌افته فکر می‌کنید این برای اون شبون آسونه که اون کلیسا رو به کسی دیگه‌ای واگذار کنه و به راه خودش بره اما اگر اون شبان باور داشته باشه که در تمامی مدتی که شبان اون کلیسا بوده به خاطر قدرت خدا بوده که تونسته خدمت بکنه اگه باور داشته باشه که خدا من هر کاریه که و انجام داده و قدرت خدا پشت تمامی کارهای او بوده اگر واقعا به این ایمان داشته باشه و اگه باور داشته باشه که تمامی جلال از آن خداونده پس چرا نباید بپذیره که نتایج هم به خدا تعلق داره پادشاهی از آن توست یعنی خدایا اون هرگز کلیسای من نبوده اون هرگز کار من نبوده اون کار تو بوده پادشاهی از آن توست یعنی بفرما. این مال تو هست و هرگز مال من نبوده میتونی هر چیزی که مال تو هست بگیری کاهی خدا وارد زندگی های ما میشه و به یادمون میاره که همه چیز مال او هست و اونها رو مطالبه میکنه شاید ما اون خدمت یا شغل رو دوست داریم و فکر میکنیم اون خدمت مال ماست آیا توجه کردید که چطور کلیساها با نام شبانهاشون شناخته میشن؟ میگن کلیسای شبان فلانی و فلانی این وحشتناکه که چنین چیزی بگیم چون تعلیم کتاب مقدس این نیست. عیسی گفته من کلیسای خودم رو بنامی کنم. اون کلیسای خداست. اون کلیسای عیسی مسیحه. فکر می کنم واقعا من یه پاتشه های زان رو نمیدونستم تا اینکه توانستم به خدا بگم این کاری که شروع کردم و بیست و سه سال روش کار کردم مال تو هست. بفرمایین مال توست. هرگز مال من نبوده تو به من قدرت دادی. جلال آن تو خواهد بود. و نتیجهش هم به تو تعلق داره. بسیاری از آیات رو ما زمانی میفهمیم که در تجربیات زندگی منونها رو یاد میگیریم. من زمانی که اون کلیسا رو رها کردم، معنی واقعی تعالیم خداوند رو در این دعا درک کردم. بذارید از شما بپرسم، آیا شما تا کنون در تجربیاتتون معنی این کلام آشنا رو درک کردید؟ آیا گفتید که پادشاهی از آن توست؟ عیسی در تعالیمش به ما یاد میده که چطور دعا کنیم، نام تو، پادشاهی تو، اراده تو، و بعد به ما عطا کن، ما را ببخش، ما را هدایت کن و رهایی مانده. اگر به این ترتیب دعا کنید، بازنده نخواهید شد. این نکته اصلی هست، او گفته اینطور دعا کنید چون که به این ترتیب دعای شما انگیزه پاک خواهد داشت. یعقوب میگه ما گاهی دعا می کنیم آنچه را که میطلبیم دریافت نمی کنیم. چون انگیزه درستی نداریم. خوب از کجا می فهمید که وقتی دعا می کنید انگیزه شما پاکه. شما نمیتونید بفهمید به این دلیلی سا گفته به این ترتیب دعا کنید. پدر ما که در آسمانی، نام تو، پادشاهی تو اراده تو به ما عطا کن ما را ببخش ما را هدایت کن و رهایی مانده. و قدرت از تو ناشی میشه پس جلال از آن توست، نتیجه هم به تو تعلق داره اگر اینطور دعا کنید نخواهید باخت در باب ششم متا به ما درباره مقررات عمودی مباشرت و دعا گفته شده مطلب بعدی که عیسی تعلیم میده مقررات روحانی روزه هست او باز هم از این واقعیت صحبت میکنه که این مقررات روحانی در مورد روزه باید عمودی باشه عیسی به شاگردانش گفته که وقتی روزه میگیرن نباید چشمانشون گرسنه به نظر بیاد و بین مردم راه برند و بگن آه خیلی گرست به پایان چهل روز روزه هم رسیدم و چیزی نمونده که قش کنم عیسی گفت ما وقتی روزه هستیم باید چهره بشاش داشته باشیم سالها پیش من یه قرار ملاقات برای نهار با یکی از رهبران برجسته مسیحی داشتم اون قرار ملاقات رو لغو کرد و گفت مایلم که بعد از نهار با هم ملاقات کنیم راستش رو بگم من کمی رنجیدم فکر کردم میخواد با کس دیگه اینهار بخوره وقتی که سر قرارمون رفتیم او یک خلال دندون لای دندونش بود من فکر کردم این حقه باز با کس دیگه اینهار خورده بعد از ظهر اون روز به طور تصادفی با خانم او برخورد کردم من ترتیب شام برای جوانان رو میدادم و او آشپزی میکرد. از او خواستم که غذای اضافی بپزه او گفت او وقت اضافی داره چون همسرشون هفته روزه است بعد با خودم فکر کردم اون ناقلا روزه بوده و علکی یک خلال دندون رو لای دندوناش گذاشته بود او داش وانمود میکرد که تازه غذاشو تمام کرده این کاریه که عیسی به شاگردانش گفته وقتی روزه میگیرند انجام بدن در عهد قدیم میبینید که روزه یک مقررات هست. اون مقرراتی هست که ارزشهای روحانی رو فراتر از ارزشهای جسمانی به شما نشون میده موسا در سه مرحله جداگانه بالای کوه سینا رفت و چهل شبانه روز روزه گرفت او بیشتر از غذا کلامی از خداوند میخواست. خدا در نوشتن پنج کتاب اول کتاب مقدس از موسا استفاده کرد برادر او هارون همیشه در پایین کوه بود و سعی می‌کرد مردم را راضی کنه هارون گوساله طلایی ساخت این دو نفر در عهد قدیم با هم مقایسه شدند یکی به ما کلام میده و دیگری گوساله طلایی روزه میگه من بیشتر از غذا به کلامی از خداوند نیازمندم در روزه عهد جدید مقررات روحانی پویایی وجود داره به قول عیسی بعضی از معجزات بجز با روزه و دعا واقع نمیشند روزه صمیمیت دعای ما رو نشون میده همونطور که عیسی به ما تعلیم میده مطمئن بشیم که هدیه دادن و دعا کردن ما عمودی هست نه افقی این رو هم تعلیم میده که روزه گرفتن ما هم باید تابع مقررات روحانی عمودی باشه باید مخاطب ما خدا باشه نه مردم اینها مقررات روحانی عمودی هستند یعنی مقرراتی که بین زمین و آسمان برقرار هستند باز هم برای تاکید تکرار میکنم عیسی میگه به پایین کوه نگاه کنید آیا اونها رو می بینید؟ یکی از دلایل مشکلات اونها اینه که اونها از های درستی پیروی نمیکنند زندگی های اونها فلاکتبار چون که اونها از ها و اولویت های درستی پیروی نمیکنند اگه میخواهید که نور و نمک این جهان و راه حل و جواب من باشید ازتون میخوام برید پایین و ارزش خدا رو به اونها نشون بدید راهکار عیسی در این بخش از باب شش بی پرده است اولین کاری که عیسی در آیات 19 تا 34 انجام میده اینه که درباره 20 سوالی که در اولین گرد همایی مسیحیان به اونها تعلیم داده سوالاتی بکنه و اونها رو تفهیم بکنه وقتی این سوالات رو میخونید که مستقیما توسط عیسی پرسیده شده‌اند خواهید فهمید که او چنین چیزی میگه اگر میخواهید بدونید که ارزش هاتون چی هستند، به من نشون بدید که در پنج سال گذشته پولتون رو کجا صرف کردید یا دفتر ملاقاتتون رو در پنج سال گذشته به من نشون بدید ببینید جایی که پولتون رو خرج میکنید و زمانتون رو صرف میکنید نشون میده که ارزش‌های شما چی هستن به من نشون بدید که چطور پول و وقتتون رو صرف کردید و من به شما نشون خواهم داد که ارزش‌های شما چیه. ایسا وقتی این تعلیم رو میداد که هر جا گنجینه شما باشه دل شما نیز اونجا خواهد بود دقیقا منظورش همین بود که شما پول و وقتتون رو کجا صرف میکنید من این حقیقت رو از یک روستایی هم یاد گرفتم ما شروع به ساختن یک کلیسای کوچک کردیم هفتههای متوالی هر شنبه با همدیگه کار کار میکردیم یک روز ما حفرهای رو میکندیم که قرار بود به تون ریخته بشه و پایهها در اونجا مستقر بشن از اونجایی که محبته ساختمان در یک بولوار شلوغ قرار داشت ضمن کار ما صدها نفر از اونجا رد می‌شدند اکثر کسانی که در ساختمان کلیسا کمک ملوان ها بودند یک روز شنبه یک افسر نیروی دریایی که خلبان جت هم بود اومد و به همراه ما وارد و حفره شد و شروع به کندن کرد ما هیجان زده بودیم بسیاری از ها شوکه شده بودند چون اونها برای کسی کار می‌کردند که الان اون پایین مشغول کندن و حفره بود وقتی که برای استراحت نشستیم و افسر گفتم خوشحالم که امروز شما به کمک ما اومدید ممکنه به ما بگید چرا تصمیم گرفتید بیایید؟ او به ندرت کلیسا می اومد جواب داد راستش نمیخواستم بگم، اما خب بگم. من و همسرم یک حساب جاری مشترک داریم. من شنبه ها از اینجا رد میشدم و میدیدم که شما اینجا کار میکنید و برای من مفهومی نداشت. حتی تعجب میکردم که چطور شما میتونید اون مردان رو وادار کنید که شنبهها کار کنند. اونها یک روز تعطیلشون رو میدند. اما وقتی دیروز از سر کار به خونه برگشتم همسرم گفت عزیزم من هزار دلار برای اون کلیسای کوچک در بولوار پرداختم راستشو بگم من عصبانی بودم ما یک ساعت و نیم با هم مشاجره کردیم اما بالاخره این واقعیت رو پذیرفتم که پول من در این ساختمان خرج شده وقتی امروز رد می شدم چیزی دل من رو به این سو کشید احساس می‌کردم چیزی منو به طرف این حفره میاره که کمک کنم اون روز صبح چه اتفاقی برای او افتاد او متوجه شد که هزار دلار از گنجش رو در این ساختمون قرار داده بنابراین به اونجا کشیده شد تا در اون حفره کار کنه ببینید این قانون زندگیه هر جا که گنجینه شما هست قلب شما همانجا خواهد بود این رویکرد عیسی به مسئله ارزش‌هاست عیسی به این مردان میگه به من بگید چطور وقتتون رو صرف میکنید؟ چطور پولتون رو خرج میکنید و من به شما میگم که ارزش‌های شما چیه؟ و بعد از اون عیسی بر ارزش‌های رابطه با خدا یا رابطه عمودی متمرکز میشه. وقتی عیسی این کارو میکنه، بزرگترین چالشی که پیش روی اونها میزاره اینه. حالا برید پایین و این ارزش‌ها رو با مردم پای کوه که از ارزش‌های ابدی خدا آگاه نیستن در میون بذارید. چطور یک ارزش رو مطرح میکنید؟ ارزش‌ها رو چطور برای فرزندانتون مطرح میکنید؟ همه ما دوست داریم که ارزش هامون رو به فرزندانمون منتقل کنیم. شما چطور این کار رو کنید؟ وقتی یه روز صبح اصلاح می کردم، یکی از دخترای من که تازه رو افتاده بود وارد هموم شد و کلاه هم رو به من داد. او داشت می گفت، پدر من مردیه که زود بیدار میشه، اون چیز سفید رو به صورتش میماله کلاهش رو به سرش میذاره و میره. پس وقتی من داشتم اون چیز سفید رو میمالیدم او فکر کرده بود چیز بعدی که تو نیاز داری کلاهته. بفرما اون هم حاضره. بگیر و برو. شانزده سال بعد او به دبیرستان میرفت و برنامه کاملا فشرده ای داشت. او کاپیتان تیم ورزشی بود. او در مورد تیمش احساس مالکیت میکرد. اگر یک مسابقه بسکتبال با تیم دیگه ای داشتن زود از خونه خارج میشد چون باید مسافت طولانی رو پیاده میرفت. او شبها ساعت به خانه برمیگشت، و بعد در نیمه شب میشنیدم که او تمرین تمرینهای پرشش رو در اتاق انجام میده همسرم به من گفت او هر سه هفته یک بار سردرد میگرنی شدیدی داره و بعید نمیدونه که این سردردها با برنامه‌های او بی ارتباط باشه تصمیم گرفتم که با دخترم حرف بزنم روز شنبه صبح با هم برای پیاده روی رفتیم و من گفتم سیندی تو واقعا یک برنامه داری اینطور نیست او گفت بله پدر من اینو از تو یاد گرفتم من تمام عمرم تو رو نگاه می کردم. تو واقعاً به من نشون دادی که زندگی باید به این ترتیب پیش بره و کارها اینطور انجام بشه تا اینکه کاری به سر انجام برسه در حالی که او لیستی از کارهای سخت منو و برنامه های کاری منو میشمرد با خودم فکر کردم حالا راجع به چی با او صحبت کنم ببینید او ارزشهای منو یاد نگرفته او ارزشهای منو کسب کرده پدر من به کتاب مقدس ارزش قائل بود وقتی من بچه بودم همیشه می دیدم که پدرم روی یک صندلی راحت می شینه و کتاب مقدس می خونه و هر چند دقیقه یک یکبار میگه اوه oh, این خارق‌العاده است این خارق‌العاده است من تحت تأثیر این قرار گرفتم که باید چیز خارق‌العاده در این کتاب وجود داشته باشه. حالا که بزرگ شدم کتاب مقدس یکی از ارزش‌های اساسی زندگی منه. پسر بزرگ من می دید که من اکثر ساعت بیداریم رو به مطالعه کتاب مقدس می گذرونم. او می بگه که کتاب مقدس برای من خیلی ارزشمند بود. وقتی که در سال آخر دبیدستانش بود او رو با خودم به سفر بردم. یک روز وقتی داشتیم با هم می دویدیم و گفت میدونی دونی کاری که فلانی می کنه واقعا مهمه. او از یه دوست مشترک نامبرد که دندان پزشک بود و گفت او واقعا مرد مهمیه. وقتی کسی متخصص باشه واقعا شخص مهمیه. من گفتم درسته و بعد از یک دوست جراهمون نام برد و گفت که چقدر شغلش مهمه او چند نفر دیگه از دوستانمون رو نام برد و به اهمیت کار اونها اشاره کرد و بعد بالاخره گفت اما میدونی من کسی رو نمیشناسم که کاری به مهمی کار تو داشته باشه بعد از حدود یک مال دویدن او گفت من تصمیم گرفتم در زندگیم کاری رو انجام بدم که تو انجام دادی من میخوام شبان بشم من خیلی مراقب بودم که این فکر رو به او تلغین نکنم اما از این تصمیم او بسیار خوشحال بودم وقتی که او دنبال کالج میگشت کالج‌های کوچک زیادی به او تحصیل در رشته بسکتبال رو پیشنهاد کردند اما من خوشحال بودم که میشنیدم پسرم به همه اون مربیان جواب میداد که میخواد به دانشگاه کتاب مقدس بره و او به دانشکده کتاب مقدس رفت در حالی که اون دانشکده حتی تیم بسکتبال هم نداشت. طبیعی بود که کتاب مقدس برای پسر من ارزشمند باشه، چون که کتاب مقدس برای پدر من و برای من هم ارزشمند بوده. چیزی که ما به فرزندانمون انتقال میدیم، سخنرانی های ما در مورد ارزش نیست، بلکه ارزش هست که ما در زندگی به کار میگیریم که یا خوب هستند یا بد حالا اگر این در مورد فرزندان ما صحت داره چطور این ها را با مردم پای کوه مطرح کنیم به بالای کوه برمیگردیم شما در اولین گردهمایی مسیحیان هستید و میخواهید بخشی از راه حل مشکلات مردم پای کوه باشید بخشی از مشکلات اونها اینه که های درستی ندارن در نتیجه پیروی از عیسی شما های درست را به دست آوردید همون ارزشهای رابطه بین شما و خدا که عیسی برای شما آشکار کرد وقتی که ارزشای عیسی رو کسب کردید چطور اون رو برای مردم این دنیا نشون خواهید داد خب اینجا باز همون جایی که نمک باید وارد گوشت بشه و نور در تاریکی بتابه نمک نمیتونه توی نمکدان کار خودش رو انجام بده ها بیشتر از اینکه آموخته بشند، کسب میشن بنابراین اگر ارزش ها رو مطرح کنید باید جایی برید که مردم حضور دارن و اون ارزش ها رو در مقابل اونها زندگی کنید و اون ارزش ها رو به اونها نشون بدید برای اینکه من و شما نمک زمین و نور جهان بشیم، عیسی باید در متاباب شش ارزش های عمودی رو به شاگردانش تعلیم میداد عیسی دعای ما اینه که در وقتی که با هم داشتیم و کلام خدا رو با هم مطالعه کردیم، در ایمانتون تشویق شده باشید تا بتونید حقیقت فیض خدا رو بهتر به مردم نشون بدین. امیدواریم که درس امروز به شما کمک کنه که با اطمینان بیشتری در حضور پدر آسمانی دعا کنید. همطور که عیسی به شاگردانش تعلیم داد. چه سعادتمندیم، ما که قادریم در هر زمان و هر جایی و درباره همه چی با خدا صحبت کنیم. یادتون باشه که وقتی وارد این دنیا میشید شما نور و نمک جهان هستید. تا برنامه بعدی دعا می کنیم که اون به شما جسارت بده که شهادتتون رو به دنیا بدید و بگید که خدا در زندگی شما چی کار کرده.